مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و پینجاه و یکم ادامه داستان بار دیگر رجوع کردن به قصه صوفی و قاضی این دماندم نیست کاید آن بشر هین برازین چه بالای سر نیستش برخر نشاندن مجتهد نقشه هیزم را کسی برخر نهد برنشست او نه پشت خرسزد، پشت تابوتش اولا ترسزد. ظلم چه بود، بعض غیر موضعش، هین مکن در غیر موضع زایش. گفت صوفی پس روا داری که او سیلی امزد به و به این روا باشد که خرخرس قلاش سوفیان را صف اندازد بلاش. گفت قاضی تو چه داری بشکم؟ گفت دارم در جهان من شش درم. گفت قاضی سه درم تو خرج کن. آن سه دیگر با او ده بی سخن. زار و رنجور است و درویش و ضعیف، سیدرم در بایدش تر رو بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفیان بود خوب راست می کرد از پای سیلیش دست، که قصاص ام ارزان شده است. سوی گوش قاضی آمد بهره راست، سیلی آورد قاضی را فراز گفت هر شش را بگیرید ای دو خسم من شام آزاد بی و وسم شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی قاضی را گشت قاضی طیره صوفی گفت هی حکم تو عدل است لا شک نیست غی آنچه نبسندی به خود ای شیخ دین چون پسندی بر برادر ای امین این ندانی که پی من چهکنی هم در آن چه عاقبت خود افگنی من هفر بعرن نخواندی از خبر، آنچه خواندی کن عمل جان پدر. این یکی حکمت چونین بود در قضا که تو را آورد سیلی بر قفا. وای بر احکام دیگرهای تو، تا چه آرد بر سر و بر پای تو. ظالمی را رحم آری از کرم، که برای نفقه بادت سدرم، دست ظالم را ببر چه جای آن که به دست او نهی حکم و انان، تو بدان بزمانی ای مجهول داد که نژاد گرگ را او شیر داد، جواب دادن قاضی صوفی را گفت قاضی واجب آیت من رضا هر قفا و هر جفا کارت قضا خوش دلم در باتن از حکم زبور گرچه شد رویم تراش کل حق و مر این دلم باغ استو چشمم آبرواش ابر گیرید باغ خندد شاد و خوش سال قحط از آفتاب خیر خند باغ ها در مرگ و جان کندن رسند زمر حق وب کو کسیرن خانده ای چون سر بوریان چه خندان مانده ای؟ روشنی خانه باشی همچون شم گرفرو پاشی تو همچون شم دم آن تو مادر یا پدر حافظ فرزند شد از هر زرر ذوق خنده دیده ای خیر خند ذوق گیریه بین که هست آن کان قند چون جهنم گریه آرد یاد آن پس جهنم خوشتر آید از جنان خنده ها در گریه ها آمد کتیم گنج در بیرانه ها جو ای سلیم ذوق در غم هاست گم کردند آب حیوان را به بردند باشگونه نال در ره تا ربات چشمها را چار کن در احتیاط چشمها را چار کن در اعتبار یار کن با چشم خود دو چشم یار امراه شورا بخان ان سحاف یار را باش و مگوش از ناز اف یار باشد راه را پشت و پناه چون نیکو نیک و بنگری یار است راه چونکه در یاران رسی خاموش نشین اندرآن حلقه مکن خود را نگین در نماز جمعه بنگر خوش به جمله جمع اند و یکندیش و خموش رختها را سوی خاموشی کشان چون نشان جویی، مکن خود را نشان. گفت پیغمبر که در بحر هموم، در دلالت دان تویاران را نجوم. چشم در استارگان نه ره به جو، نطق تشویش نظر باشد، مگو. گردو حرف صدق گویی ای فلان گفت تیره در طبع گردد روان این نخاندی کل کلام ای مستحام فی شجون جر رهو جر کلام هین مشو در آن حرف رشد که سخن زو مرسخن را می کشد نیست در ضبطت چو بکشادی دهان از پای صافی شود تیره روان آنکه معصوم ره وحی خداست چون همه صافه است بکشاید رواست زان که ما ینتق رسولون بالهوا کی هوا زاید ز معصوم خدا. خیشتن را ساز منطیق زهال تا نگردی همچومن سخره مقال. سوال کردن آن صوفی قاضی را گفت صوفی چون یک کان است زر، این چرا نفع است و آن دیگر زرر؟ چون که جمله از یکی دست آمده است، این چرا حشیار و آن مست آمده است؟ چون زیک دریاست، این جوها روان، این چرا نوش است و آن زهر دهان؟ چون همه انوار از شمس بقاست، صبح صادق صبح کاذب از چه خواست چون زیاک سرمست ناظر را کهل از چه آمد راست بینی و حول چونکه دار و ضرب را سلطان خداست نقد را چون ضرب خوب و نارواست چون خدا فرمود ره را راه من این خفیر از چیست و آن یک راه زن از یک اشکم چون رسد هر و صفه چون یقین شد الولد سرون ابه وحدت کدید. با چندین هزار صد هزاران جنبش از عین قرار جواب گفتن آن قاضی صوفی را گفت قاضی صوفیا خیره مشاو یک مثال در بیان این شناو. چنان که قراری عاشقان حاصل آمد از قرار دلستان. او چکه در ناز ثابت آمده. آشقان چون برگ ها لرزان شده. خنده او گریه ها انگیخته. آب رویش، آب روها ریخته. این همه چون و چگونه، چون زبد بر سر دریای بیچون میتبد. زد و ندش نیست در ذات و عمل. زان بپوشیدند هستیها هلل. زد زد را، بود و هستی کی دهد بلکزو بگریزد و بیرون جهد ند چه بود؟ مثل، مثل نیک و بعد. مثل، مثل خیشتن را کی کند. چون که دو مثل آمدند ای متقی، این، چه اولاتر از آن در خالقی بر شمار برگ بستان زد و ند چون کفه بر بحر بین دست و زد به بی چگونه بین تو برد و مات بحر چون چگونه گنجد اندر ذات بحر کمترین لابت او جان توست این چگون و چون جان کی شد درست پس چنان بهره که در هر قطر آن از بدن ناشیتر آمد اقل و جان کی بگنجد در مزیق چند و چون اقل کل آنجاست از لا یعلمون عقل گوید مرجسد را که جماد بوی بردی هیچ از آن بحر معاد جسم گوید من یقین سایه تو ام یاری از سایه که جوید جان ام عقل گوید کین نه آن حیرت سراست که سزا گستاختر از ناسزاست اندر اینجا آفتاب انور خدمت ذره کند چون چاکره شیر این سو پیش آهو سر باز اینجا نزد تیهو پرنهد. این تو را باور نیاید، مصطفی چون زمسکینان همه جوید دعا. گر بگویی از پی تعلیم بود، عین تجهیل از چرو تفهیم بود؟ بلکه می داند که گنج شاهوار در خرابی ها نهد آن شهریار، بدگمانی نال محکو سوی است. گرچه هر جزوش جاسوس ویاست است. بل حقیقت در حقیقت غرقه شد. زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد. با تو قلماشید خواهم گفت. هان، صوفیا، خوشپهن بگشا گوش جان مرترا هر زخم کایت زاسمان منتظر می باش خلعت بعد از آن کو شاه هست که سیلی زند پس نبخشد تاج و تخت مستند جمله دنیا را پر پشه بها سیلی را رشوت بی منتها گردنت زین طوق زرین جهان چست در دزد و ز سیلی ستان آن قفاها کنبیا برداشتند زانبلا سرهای خود افراشتند لیگ حاضر باش در خود ای فتا, تا به خانه او بیابد مر تورا ورنه بر را برد او باز پس که نیابیدم به خانه هیچ کس باز سوال کردن صوفی از آن قاضی گفت آن صوفی چه بودی که این جهان ابروی رحمت گشادی جاودان هر دم شوری نیاوردی به پیش بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش شب دیدی چراغ روز را، دی نبردی باغ عیش را. جام صحت را نبودی سنگ تب، ایمنی را خوف، ناوردی کرب. خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش؟ جواب قاضی سوال صوفی را و قصه ترک و درزی را مثل آوردن گفت قاضی بست هیره و صوفی خالی از فتنت چکاف کوفی تو بنشنیدی که آن پرقند لب قدر خیاتان همی گفتی به شب خلق را در دزدی آن می نمود افسانههای سالفه. قصه پاره ربایی در برین می حکایت کرد او با آن و این در سمر می خواند در زینامها گرده او جم آمده هنگامه ای. مستمع چون یافت جازب زن وفود، جملا اجزایش حکایت گشته بود، قال النبي عليه السلام ان الله يلقن الحكمه علی لسان الواعزين بقدر همم المستمعين جذب سم است اركس ایران خوش لبی است گرمی و جد معلم از سبی است چنگی ایرا کو نوازد بیست و چار، چون نیابد گوش گردد چنگ بار. نه حراره یادش آید، نه غزل، نه دهنگشتش به جنبد در عمل. گر نبودی گوش های غیب وای وعی ناوردی گردون یک بشیر ور نبودی دیدهای های ابین نه فلک گشتی نه خندیدی زمین آندم لولاک این باشد که کار از برای چشم تیز استو و نزار آمرا از عشق همخوابه و طبق کی بود پروای عشق سنع حق. آب تتماجه نریزی در تغار تا سگ چندی نباشد تو مخار. رو سگ کهف خداوندیش باش تا رهاند زین تغارت استفاش. چونکه که دوزدی گفت که کنندان در زیان اندر نهافت اندران هنگامه ترک از خطا سخت تیره شد ز کشف آن غطا. شب چو روز خیز آن رازها کشف می کرد از پی اهل نها. هر کجا آیی تو در جنگ فراز بینی آنجا دو ادو در کشف راز. آن زمان را محشر مذکور دان وان گلوی رازگو را سور دان که خدا اسباب خشمی ساخته است وان فضایه را کوی انداخته است بس که قدر در زیان را ذکر کرد حیف آمد ترگ را و خشم و درد گفت ای قصاص در شهر شما کیست استاتر در این مکر و دغا داوی کردن ترک و گراو او که درزی از من چیز نتواند بردن. گفت خیاط است نامش پور شش، اندرین چستی و دزدی خلق کش. گفت من زامن که با صد اضطراب او نیارد برد پیشم، تاب پس بگفتندش که از تو چاستر مات او گشتند در داوی مپر رو به عقل خود چونین غرمه باش که شوی یاوه تو در تزبیر هاش گرمتر شد ترکو بستانجا گرو که نیارد برد نیکوه نه نه نو، مطمئانش گرم کردند، زود او گرو بست و رهان را برگشود. که گرو این مرکب تازی من، بده دزدد قماشم او بفن، ور نتاند برد اسبی از شما واسطانم بهر رهن مبتدا. ترک را آن شب نبرد از غصه خواب، با خیال می میکرد و هراب بامدادان اطلس زد در بغل شد به بازار و دکان آن دغل. پس سلامش کرد گرم و اوستاد جست از جا لب و ترهیبش گشاد. گرم پرسیدش ز حد ترک بیش تا فگندن در دل او مهر خیش. چون بدید از وی نوای بلبولی پیش شفگند اطلس استنبولی که ببر این را قبای روز جنگ زیر نافم واسع و بالاش تن. تنگ بالا بهر جسمارای را، زیر واسع تا نگیرد پای را. گفت، صد خدمت کنم، عیزو و داد، در قبولش دست بر بردیده نهاد. پس بپیمود و بدید، او روی کار بعد از آن بکشاد لب را، در فشار از حکایت میران دگر و از کرمها و عطای آن نفر و از بخیلان و ز تحشیراتشان از برای خنده همداد و نشان همچو آتش کرد مقراز برون می و لب پرفسانه و فسون